حرف تا مثل ته هست منطقه درشت صدات رو نزد تو حرف بگید ها ها زبون حالت قاشوقی پیدا کنه حالا بگید تا تا تا تا تا تا تا نشه تا تا تا تا تا درشت من برای بچه ها مثال, مثال میزنم بگم نگید عوضو بیلله ایمین شیطانی شیطان میگه جون چه نازی داره میگه بغلت یه جور بگو فرار کنه شیطا شیطان شایطا شیطان شیطان بعد از من تکرار کنید شیطانی عطاها طاهوت